راهی راه عشق که هیچش کنار نیست آنجا جز که جان به سفارن چاره نیست است هرگه که دل به عشق دهی خوش دمی بوبد در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست ما را ز منع عقل ما ترسانم می بیا کانشهن در ولایت ما هیچ کار نیست. از چشم خود بپس که ما را که مید جانا گناه به تال و جرم ستاره نیست. او را به چشم پاک توانید چون عله. هر دیده جای جلوه آن ماه آره نیست. فرصت شمار طریق رندی که این نشان چون راه گنج بر همه کس آشکار نیست نگرفت در تو گریه حافظ به هیچ رو حیران آن دلم که کم از سنگ خاره نیست